بسم الله الرحمن الرحیم این صحبت رو اقتصاص میدیم به مسئله عدالت یا اجتماعی که این وزدت هنها اگه نمتون برابری سوسیالیست یا تا دموکراسی بر زبان هست و یکی از مهوریترین سوژه های مورد بحث متفکرین بوده بخی عظیمی از انرژی فکری و عملی عدف فکر رو در به خودش اختصاص داده و منجر به های بزرگ اجتماعی هم شده در نقطه مقابل این بحث به این مزلم اون روزه پریدهی به نام سرمایداری یا امپریالیز و به زبان ما استکبار مطرح بوده در دورانهای قبل پریدهی مثل فیودالیز و امپراتوریها ها مطرح بوده منوان قانونهای اصلی ستم و بیادالتی تحبیر و تفسیر می شودند دقیقی قبل صحبتی داشتیم با یکی دوستان که عنوانی مثال نقد اتباط مستقیمی با این مسئله داره بطره بود که انسان بایدی برای ی ها و فقر ها آقا با کنه و با اسیبان ها ر هم کنه دا ما بادا آنهاطببا نابود باششنم برای ندارها و کمدارها و طبات پایین جامعه من نظر دام که تو واقعا درست برکس انسان بایدی واقعا دلش به حال اشراف و اشرافزادگان و خوانین و پولدارهای کلان و فرزندانشون بایستی بسوزه که غرق در بسطلا نازو نعمتهای دنیوی هستند زیرا واقعا بدبخترین آدم ها هم ها هستند هم قلاشون هم بچهاشون سیاشقی ترین آدم ها در منده و زلیل ترین و در یوزه ترین و بیبنیادترین بنیاد ترین هستند طبقات ها به سعادت و سلامت نزدیک‌ترند خب خود همین مسئله خود بیانگر منظری دیگری است درباره عدالت به نظر من چنین نگاهی که بر اساس این مثال این همه جا حاکمه خود این نگاه نظر من ستم و ظلم این انسان پولدارها رو سعادتمند و کمدارها و ندارها رو بعد بدونه خود این نگاه نگاهی ظالمانه و ستم بروره چرا انسانی که کانونهای قدرت مادی رو کانونهای سعادت وقتی بدونه طبیعتا نفسش و دلش و فکرش به اونها متمایل میشه و طبیعتاً به سمت اونها حرکت میکنه تا خودشم مثل اونها به اسطلاح خودش سعادتمند بشه و برای رسیدن به چنین سعادتی خلاف واقع طبیعتاً مجبور ستم بکنه برای رسیدن به چنین مقامی انسان در حقیقت با در مراحل اولی ستم وزیر و ظلم وزیر بشه تا کم کم بتونه به قلم ستمگران وارد بشه تا یواش دواش مثل اونها بتونه ستمگر بشه بنابراین ستمبری و ستمگری هر اوستان یک مطلبه نظرها با هم هیچ توابط و تضادی نظاره با که علیت و معلول هم دیگه است تمام ستمگران در واقع در باعث ستمبران هم هستند و بالعکس. اصلا لازم عرفتی و احساس و قضاوت بشری آن نگاهی که اشرافیت و کانونهای ثروت و پولهای بادآورده رو قدم رو به سعادت و سلامت و عزت و خوشبختی میدانه این نگاه نگاهیست ظالم و حامل چین نگاهی نیز ظالم هست در حد توان خودش اگر امکانات ستم کردن واضح رو نداشته باشه اول ستم پذیر خوبی است چون برای رسیدن به چنان انونهایی باعستی اون انونها نزدیک شد و برای نزدیک شدن به چنان انونهایی باستی ستم آنها را پذیرفت تا از تحسفر اونها و از قارت اموال مردم در آنجا یواش یواش ستم ستمگر بشی ستمگر بشی یعنی چی یعنی خوشبخت بشی این مقدمه بعد نبود مثال حسی بود <تصفيق> مثال دیگر میاریم در مقدمه این صحبت قبل از این بحث رو اصولی سر بکنیم این مثلا نگاه کنید امروز خیلی در کشور خود ما هم تولید به یه ای ایدولوژی شده است و اینکه مثلا فساد و فحشا و رسپیگری رو معلول فقر و نداری میدونند و این یه قانوم خب، خودش یک از جهر است اگه بخواهم از لازه اعتقالی دینی میگاه کنیم که این نگاه نگاه هیست بقایت شقیانه و کافرانه و اصلا جنگ با خداست که نداری رو انسان جلدتی فساد اخلاقی میتونه حالا اعتقالی دینی رو فیدن نداریم همون اعتقاد واقعی بینی و تجربی نشون میده که هشت روزبیگری ها و فساد و فساد اخلاقی در زن به در مرد به نوعی از شکم سیری و عیش و عشرت رخ میده بسیار بسیار کمه در خانواده هایی که فقیر بوده باشند و ندار بوده باشند فساد خیلی کم داره اصلا کارگاه های تولید فساد اشراف و سروتندوزی ها و مال های آورده بوده اگر به طبقات پایین هم سالایت میکنه منشایش طبقات اشرافه منشای فساد در اشرافیت خواب بیدونده در فقر این رو بستی بدون این هم یک اصل دینیست هم اصل عقلی و عینیست این آنهایی که چنین داهایی کاذبی دارن که فساد مضبول فقر هست اینان ها اصول دین رو دارن باطل میکنن بلکه عقل هم ندارند و کور شدن و چشمشون دو واقعیت بستن هیچه این نگاهی نه نیست نه دینیست زیرا عقودین هر تا یکیست هیچ فرق نمیکنن خب برگردیم به بحثی اصولیتر که ادالت ما خوشبختانه هر بحثی رو که تر میکنیم خود من شخصا بدون اینکه هیچ تعهد امدی اعتقادی دینی داشته باشم به طور ناخداغا هر بحثی رو میخوام به استش به یکی از کلام خدا در قرآن یا یکی از سخنان اهمیتها رو به قضوص علیه علیه السلام میریسم این بحثم همینطور. در این مسئله خوشبختان عمدی نیست خود به خود اینطور میشه و خود همین دال و حقانیت حکمت است که در لازم بیا و امامان ماسته حضرت علی ادالت رو چنان تعریف کرده که قبل و بعد او هاگر هیچ کس نتونسته اینچنین عالی و ناب و زلال و ملموس تعریف کنه علی می که عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن بنابراین انسان عادل این کسیست که سر جای خودشه با همین سادگی. خب ما از این منشه میتونیم تمام تار و بود ستم رو کنیم از ظالم است که سر جای خودش نیست خیلی واضحی سر جای خودش نیست یعنی چی؟ یعنی در خودش نیست یعنی در خودش قرار نداره یعنی بیخله یعنی از خود بیگان است به زبان امروزی ها یعنی مسخ شده است مسخ چه چیزی شده است مسخ عشیاءی بیرون مسخ غیر خود در غیر خود از خود بیگانه شده است یعنی در ظلمت افتاده است. و همین دلیل ظالم شده است. ظلم و ظلمت یکیست انسان ظالم انسانیست است که در ظلمت قرار گرفته، یعنی از خود بیگانه شده. چرا؟ برای اینکه منشأ روشنایی وجود انسان، انسان خلیفه خداست، محل روح خداست. انسانی که از خود، که اصل خود، دل خودش دور در تاریکی قرار گرفته و لذا ظالم شده. اهل ظلم شده اهل ظلم شده این چی؟ اینه اگه پولداره ظالمه اگه بی پوله ظلم بازیره، هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ روشنایی در خیشتن انسان اون نور حضور داره برای که قلب انسان خانه خداست و خداون نور است نور بیناییست نور شنباییست نور هوش و نور عقل و علم و دین است انسان که از خود بیگانه میشه در اشیای بیرون در ظلمت میفته لذا اهل ظلم میشه از ظلم زلد بسته به شرایط داره انسان به میزانی که پول داره قدرت دنیا داره ظالمه به میزانی که نداره ظلم پذیره زلم پذیره و هر کسی هم در هر حتی از امکانات مادی که هست هم ظالمه هم ظلم پذیر حرف نمی به یه آدمی که خیلی سبت نداره نسبت به همون جسد آدمی که زیر دست بودستن هم و فرزندانش تمام ظلمش رو الگاه میکنه تمام زور و جبر و فسادش رو میکنه ولی نسبت به کسانی که لازی امکانات مالی بالای دست بودستن چابزوست و ظلم پذیره این همانه ظلم رو از آنجا میپذیره از بالای دست میپذیره بر زیر دست الگاه میکنه ببینید هیچ فرقی نمیکنه خب تا اینجا بر ما میشه که پس یک کلامی دیگر یه داره میفرماد که نمالک باشید و مملوک آزادگی و رستگاری همینه همین سخن رو قدر سقرات حکیمان داره یه انسان آزاد و رستگار کسی است که نمالک است نمملوک ببینید بس بست بست بست بست بست مالکیت و تصرف انسان به میزانی که سعی میکنه صاحب شئی چیزی کالای سروتی بشه در واقع داره به تملک ما سروت در میاد اون شی در میاد از خودبیگانگی و به ظلمت افتادن یعنی همین یعنی از خودش میاد بیرون میره در اون شی، اون شی یا فرقونه یا عصبشه یا آتومبیلشه یا هواه به فرق نمیکنه. کسی که همون فرقون یا علاقشو میفرستی داره و همه میزان در ظلمت یعنی ظلم و ظلم وزیره که مثلا مثل آقای هورتیوز راکفلر که کارخانه جاتی کرد و شرکت چند چملیتی خودشون میفرستن هیچ فرقی نمی کنه. فقط توابط در امکانات و شرایطه این ظلم به غلپه یکیه به نوعی که جبران ندار و کم داره نمیشه گفت ظلمش کم نخیر تواناییش در ظلم کردن کمتره در حد توانش هم بقدار زرورداره و نسبت زیر دستانش داره می کنه. بنابراین ما این اعتقاد رو نداریم و عقل ما هم تصدیق نمی کنه که انسان ندارتر کسی که جبران ندار شده عادل سری نخیر ولی کسی که قناعت رو یا فقر با فخر رو قذیرفته و اساس دین و معرفت این حسابش سواست او است که نخواسته در ظلمت باشه نخواسته روح خودشو بفروشه و اشیا خب بنابراین ما وارد بحثی میشیم که امروز هم در قرد ما یک از مهمترین وکیلیترین بحث در قلم روح علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی در قلم روح اجتماعی بوده و اون بحث مالکیت مالکیت دونو و دو صورت داریده مالکیت مادیست این مالکیت است این هر دو, تا دو روی سکه مالکیت و دروی سکه ظلمت و ظالمیت انسانی فرد میکنه کسی که میخواد صاحب روح و روان و وجدان و هم همسر خودش باشه جمله صاحب تنش باشه یه یک کسی که میخواد مال دیگران رو صاحب بشه این هم یک ظلم دیگه است و کسی که مال خودش رو میفرسته و روحش در اشیای مملوکاتشه این دوتا صورت از ظلمه و ظلم کردنه و مملوک شدن و بی اراده شدن بی روح شدن و برده شدن انسان به میزان که این شکلیست هم ظالم است هم ظلم پذیر و اتباقه نداری دقت کنیم اراده به تملک روح و عاطفه و جانی دیگران یعنی مالکیت انسان بر انسان بسیار ظالمانه تر و شقیانه تر از احساس مالکیت بر اشیاء و اشیاء برستی است این جهانخاری اون یکی انسانخاری و آدمخوری اون تا این تملک روح سایر انسان ها همیشه تحت یک عنوان ابلیسی طبیع میشه که آن رو قداست میبخشه یک قداست ابلیسی و آن اسمش چیست؟ عشق من عاشق همسر و بچه هم هستم بنابراین باستی روح و اراده آنها رو ببلم و آنها رو تبدیل به یک شئی در اختیار توسط خودم بکنم این آدم خوری رو اسمش میذارم عشق و نموده در قلم به اشد مالکیت ها و جهان خاری ها و ستم ها شدیدترین شعار اشق و ایسار داده میشه مثلا کی در قلب انپیریلیز نامرکا و در قلم رو به مالکیت های بزرگ جهانی شدید ترین دعوی های ابلیسی اشق و میشه و ها عاشق نجات و آزادی و دموکراسی هستند و برای آزاد کردن مردمان مردمان رو در جهان بمباران و قتل ها می اینها اینا قتله هم های عاشقان هست این مثال های کوچک تا اینجا بحث رو به اصل می پس بس انسان سلط وزیر و سلطگرده کیه هیچ فرق نمی وقت توابید در شرایط اگر ما راکفدر ظالم تر بدونیم به قوه از اون کارگل و پرولتاری که داره در کارخونش کار میکنه این از جهل ماست و این از فکر ظالمانه و ظلمانی ماست. فکر ظلمانی، ظلم تو میکنه. اصلا نیست. تجربه این انقلابات سوسیالیستی که اساس ادالت رو فقط این مکانیزم مادیت مرس و مالکیت صوری قرار داده بود نشان داد که در فکری تا چد قلط و خطاست برای همین از اشد چنین سوسیالیست های زورکی و مکانیستی و فرمالیستی که در شورب اتفاق افتاد اشد فاشیزم و ظلم و خفوان و جنون و جنایت ها پیدا شد و اون نظام رو از بنیاد در هم همشکست بنابراین امپریالیزم و افکومه جهان هم جهانخاری هم آدمخار مثال دیگه رو بسنیم یک مرد به میزان که در خانه خودش نمیتونه روح قلبو قلب و ای همسر و فرزندان خودش رو تحت تصرف و مالکیت مطلقه خودش در بیاره فنها رو طبیل به تیول و اشیاری محض بکنه در بیرون به ثروت اندوزی و پرستش قدرت های مالی و اقتصادی میره این همانه ببینیم پس مالکیت آتفی و به صلاح مالکیت انسان برای انسان زیر بنای تملک ها و ستمه ها و استثمار های اقتصادی و مالی میشه پس این واضحه که بنیاد استثمار در قلمرو جامعه و ستم ایش در خانواده قرار داره و برخواسته از آدم خوری انسان آدم که در لباس عباطف و عشق و ایسار پنهان شده و این نشد ابلیسیت پس اگر انسان عادل انسانی است که سر جای خودشه بس انسان عادل همان مؤمن مومن فقط است که سر جای خودش است. خب در اینجا باستیم معنای ایمان و مؤمن رو یه مقدار ملموستر بکنیم ایمان به عنوان ایمان به خدایی در پشت آسمان ها از آران سال مورد بحث بوده و چین ایمانی ما دیدیم که نتران دادت قدید نه بود بلکه خود منشه اشد ظلمت شد و لذا ظالمیت ستم میدید و ستم بری شد و از همین منشه بود که کسانی مثل مارکس اومدن ثابت کردن که قلم فرهنگ استعمار و بردگی مذهبه ولی اینها چون مذهب رو نفهمیده بودند و ایمان رو نفهمیده بودن و ملاک نه از دین و ایمان و مذهب همون مذهب ای بود که در قرب در مسیحیت حاکم بود در اکثر مذایب دیگر همین حاکم بوده اونها این قضاقت رو کردن و این درست هم بود در برداشتی اونا کردن این سخن درست بود اگر مذهب همینیه که در ساریخ حاکم بوده اون مذهب نفاق و اون مذهب از خود که خدا رو پشت آسمان میدانه نه خدا روزایی گردانی رو دیگتر بدانه هر درست. از که خدا همچه مدایی نبود و دین حقی هم بیگه همچه دیگه نبود لذا حرف به و همویزان که درسته قلط ببینید دقیقا ما در دین اسلام و در معرفت قرآنی و اسلامی و خواسته ما میدونیم که خدا جاش در دل نه است هیگه آیه و حدیث نداریم که از خدا پشت آسمان هم صغط کرده باشه مطلبه نداریم پس اگر خدایی مومن در دلشه خدا کیست؟ آن شاه مطلق آن امپراتور و امپریالیست مطلقی که مظهر ادالت و نیز محبته در دل انسانه. و اگه اینطور نیست انسان نفسن تمام انسان‌ها ها میخوان شاه باشند اینه واقعیتیسته همه انسان‌ها ها میخوان شاه باشند خب این همان ارادهی به ظالمیت و ظلم پذیریست این ارادهی به شاه بودن به همیزان که حق نحقی حقش در دین بیدا میشه نحقیش در کفر بیدا میشه آن دینی که آن فکری که خدا را در آسمان میدانه چه این نفسی که میخواه شا بشه در قدم روی ظلم آور میگیره یا ظلم یا مظلومه ظلم پذیر مظلومه و حمومه ظلم ولی آن دین و ایمان آن فکر که خدا رو در قلب خودش میخوانه و جستجو میکنه او به سمت دادات میره و به اون شاه وجود خودش میرسه و بر تخت اون شاه جلوس پدام میکنه برای اینکه طبق معارف قرآنی خداوند آدم رو آفرید تا خلیفه خودش کنه خلیفه خودش کنه یعنی بر تخته اصالت خودش به نشانه، برعش خودش به نشانه. ما در موارد اسلامی داریم که دل مومن عاشق خداست. پس کسی که به دل خوش برگشت، به اون تخت در میگرده، اون تخت میشینه و شاه میشه، شاه حق و عادل و وصفی محبت. بنا اگر سوال بشه که راه محبت چراهیست است؟ ما بگیم راه رجقات به خیشتانه، خیش. علل معرفتی، علل عملی چراهیست است؟ همان راه فتاحات است. دین خداست دین خدا چیست؟ شخص تقوی قناعت سبر راستگوی صداقت الاخر خب به یک معنا پس عادل است که به دل خوش برگشته تخت سلطنت کدسی یافته و بر اون تخت جلوز بزن میکنه به این میگن در معرفت عرفان اسلامی به این میگن شاه عادل برای همین ما در تاریخ میکایت داریم مثلا اسکندر مقدونی به دیوژن رسید. دیوژن یک عارف وحکیمی بود. گذبه فرق بود ولی شاه بود. وقتی او گفت ای کاش من یک روز دیوژن دیوژن بشم. از این اتفاقات کم نیفتاده. داستان دیدار سلطان محمود غزنوی با آشخ خلقانی هم مشابه دیگه بوده و مشابهات فراوانی از این مسائل در تاریخ تواید شده. اولین این که انسان نفسان و ذاتن میخواست شا باشه این ذاتن بر حقه منطقه انسان سراخدار و قدمره و وزی گرفته راه شدن راه بازگشت به خیشتن خیشه راه گدا شدن راه بیگانه از خیش شدن. و سلسند رو در بیرون از خود جستجو کردن در اشیاء جستجو کردن نوعی کافرانشه در پشت آسمان جستجو کردن و اسمش خدا گذاشتنم نوعی منافقانشه وتوشیک ثاني دیگری از ادادات رو در قدم رو منطق وجود انسان میتونیم اینجوری اراده کن. اراده کنیم دولت مفهوم تعادله توازنه تعادل و توازن بین دو امر دو وضعیت همیشه مطرح میشه دیگه خب این دو وضعیت چه چی چیزیست ببینید نفس انسان و اندیشه انسان و برداشت های استی و شوری انسان همیشه برداشتها و احساسات دوگانه است. قلب روی همیشه دوگانه است. خوب، بزرش، سیبا، قوی، ضعیف و لاحر. ما این اردش های دوگانه رو بخوایم به ذات خودش برسونیم، می‌رسیم به مرگ و زندگی و از اون اساسی تر به بود و نبود. به وجود دردن می‌رسیم. اینجا بیت و اساس همه اردش ها و عذابی بود و نبود. در واقع میجو گفت رادیکالترین و اساسیترین و ذاتیترین تعریف ادادت بر اساس این اندیشه سنویتگره های انسان که اندیشه ذاتا سنویتگره است، این است که ما بگیم که انسان کسی است که تونسته بین بود و نبود تا برقرار برگرار و انسان کامل است که تونسته باشه یگانیگی بود و نبود رو بیابه این عادل کامله خب این بوده نبود چیست؟ ببینید انسان از عدم آمده و با مرگش هم نیست میشه میره خب این نبودش یه ای دو روزی وجود نمایی میکنه و ای در این ها میدونه که خیلی زود نابود خواهد شد اینه وجود فیزیک یه وجود معنوی معنایی ارزشی و عرضیابی ها هم خب این واضحه که انسان وقتی به خودش نگاه کنم اینه همون چیزش از غیره آنچه که میدیم خود خود من خودم پشتن خیش در واقع همون عدمی هم تن من از جای دیگه آمده من خودم آمل و علت و خالقه تن خودم نبود هرانچه که با خودم دارم وراست های منه شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسیه آموزش همه وارده ها از بیرونه من نیستم بلازاشون من نیستم می‌بینم که هر وقت میخواب اونه من خودم واقعاً می‌بینم که هیچی نیستم هیچی آدم واقعیت معرفتی انسان از خودش در حیات دنیاست گو و انسان در جستجوی وجود مطلق و جاویدانه است. این وجود مطلق و جاویدانه رو که در در این جستجو میکنه راه دل، راه رجعته، راه معرفت نفس، راه خودشناسی و بازگشته به خوده که نهایتا بر قلم دل که عرش خدا وارد میشه و خدا رو یعنی آن سلطان رو در خودش میابه یعنی به خود خودش میرسه یعنی چه؟ یعنی به اون بود به مطلق و جاودانه میرسه و نبودش رو در هماغذات خودش این بود میابه در اینجاست که بودونه بود نبود حاصل میشه این همون عدالت در معنای دیگری است در بیان برداشت معرفتی ذهنی این بیان دیگری از عدالت است که راه روی جهان بودویم همون راه بش اوله راه دل راه ایمان و مؤمن شدن و مؤمن خود خداست خدا از آسمان خداست این جنبه اعتقادی و معرفت دینی ماست و اونجین معرفت نفس ماست ولی انسان عادی انسان نیست که انسانی است، انسانی اهل باطنه انسان فرمالیست و ظاهرپرست نیست تا روحش بره در جسد اشیا فسیل بشه و خودش در فقر و دریوزگی و کیچی و عدم دست و پا بزنه این همون جهنم انسانی روح خودش رو فروخت به اشیا به مملوکات و مسموعات و در درکتی وجود میفته جهنم یعنی همین جهنم هم یعنی همین. روح میوفته در, در درک اسفلافیین عالم جمادی درک اسفلافیین عالم صغری روح کی لطیف ترین لطیفه الهی در عالم هستی است اسیر ها و سیائی ها و جمادات و کاله ها میشه و در آنجا میسوزه دوزخ همینه قهدی وجود همینه رضا چه این انسان هی بلنده و بلنده تر میشه هی احساس میکنه که اشیاء بیشتری رو تملک کنه شاید در آنجا احساس وجود بکنه ولی هرچی بیشتر بر مال خودش هم مال خودش میفساد قهدی زده تر جهنمی جان خارتر و آدم خارتر میشه حالا این آدار بفردازیم به جنبه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این که روی حاکم بر قرن بیستم جهان بوده که تحت عنوانی مثل سوسیالیسم، دموکراسی، برابری، ادالت و مبارزات ضد امپریالیستی، مبارزات ضد استثماری و ضد استثماری کل بشر قرن بیستم رو بر خودش مشغول داشته و با پایان قرار میستم تمام تلاش‌هاش همومان و اکثرا پوچ شده و امروز دیگه حتی بحث عدالت به عنوان تئوری هم ترنی میشه برانه که انسان نتوانست یک معنای انسانی که در خود انسان باشه برای عدالت ارائه بده ببین برمیگردیم به بحثی که مهوری تا این بحث همه متفکران این قراره بوده امپریالیزم امپریالیز از واژه امپراتور و امپرور یعنی شاه سلطان میاد، باژه بسیار قدیمی هیچ جدیدی نیست ولی امپریالیزم در قلم روی جامعه شناسی جدید معنی حامدن جدید تزرکی شده و کسی فرص که مثل لینین سن کتابی تحت این عنوان داره و اومده این رو به عنوان یک مکاشفه مورد بروسی در آداده و برای همین قرار نویستون رو گذاشته اصر امپریالیسم امپریالیسم جهانی به مسابقه کماد سرمایی داری خب همینقدر که جامعه ایژناسی جدید با همه جهل خودش کرمال کرمال به یک واقعیت اطراف کرده و اینکه اینی امپریالیزم محصول صنعت و تکنولوژی و محصول ماشینه امپریالیسم محصول ماشینیزمه چرا برای اینکه ماشین علم مکانیک و بعد الکترونیک و امروزه اوتوماسیون پدیده پدیدهای به نام ارزش اضافی شده و این ارزش اضافی تجمع تصاعدی ثروت رو پدید آورده در دست صاحبان صنعت و از این وضعیت امپریالیزم بدید اومده بعد این خاصیت ذاتن از ماشین برمی خیزه بعد امپریالیزم به ظاهر همان همان ماشینیزم بنابراین این واضحه که امپریالیزم مدرن امپریالیزمی که در عالم روی جامعه شناسی و سیاسی جدید تعریف میشه تماما ذاتی تکنولوژی داره و محصول ماشین و تکنولوژی جدید هست که میتونه طبیبایی قدیده جهانی جهان خار بشه که بر تمام ارکان جهان سلطه داشته باشه ببینید ان پرلی که غادي که هنوزم برآورده نشده بودن ولی اونها هم به همین تپو داشتند ولی از اونجایی که سراده تکنولوژی داره مراحل بدبی بود نه همچن... هرگز همچون قدرت جهانی نداشتند تمام قدرتشون از طریق لشکرکشی‌ها و کشف کش... ها بود که هم چهار روزه در کشوری بودن باز مردمان و اون شاهان منطقه‌ای اینها من رو بیرون می‌انداختند و هرگز یه امپراتوری جهانی مفهوم امپریزی جهانی مقام وزیر نشد در گذشته ای جان و نیز گفتیم که امپریالیزم یک طب به قوه بشاره انسان تا امپریالیزم رو در نفس خودش درک نکنه اصلا درک نکرد و بشار امروز متأسفانه این را اصلا درک نکرده ای دو های بزرگ این قلم رو هم هرگز نخواستن به امپریالیزم به معنای مح... مح... مح... انسانی نگاه کنند فقط صورتی بیرونیش رو دیدم که آن هم تجمع سروت ثروت بر اساس ماشین و ماشینیز و سرعت بود و این واضح صاحبان بزرگترین صناعی و پیشرفتترین تکنولوژی ها همون امپریلیست هاستن نواره این بستهای جدا نداره و بیشتر از این در موردش صحبت نمی و نیازی به اثبات هم نیست. در همون امپناتوری های قدیم هم این بوده که اون امپراتوری هایی که میتونستن امور بیشتری داشته باشن و بخشی از این طریقه از زمین رو تحت سلطه داشته باشن هم تماما بر اساس قدرت تکنولوژیکی محدود دوران خودشون بوده یعنی سلطه فنی و ابزاریشون راز امپریالیست شدنشون بوده یه کشوری شمشیرهای که میتونست داشته باشه میتونست جان رفت کنه. ما میدانیم فرض نخست این کشورهایی که تونستن منجنیق درست کنن تونستن بیشتر این کشور گوشایی بکنن ببینید تکنولوژی خوب خواسته در خدمت تسلیحات و این اتباقی نبوده هموارم پیشرفته ترین نوعی تکنولوژی در خدمت تسلیحات بوده تسلیحات به قصد امپریادیس شدن و جهان خواه شدن و به جان سلطه داشتن در دوران استعمار هم من میدونیم در جاب هنگ قرنه پیش به این طرف، چرا تبدیل به امپریالیست جهانی و استعمارگر جهانی شد فقط و فقط بخاطر پیشرفت بودنش در نیروی دریایی بود که تونست دنیا رو تعد سلطه داشته باشه تکنولوژی و تکنولوژی تسلیطی کشتی های توپدار توپنگران دریایی راز امپریالیسم بریتانیا بود. اون قدرت عوض شد به تدریج به آمریکا رفت از آمریکا شد امپریالیست درجه اول قد از فاقا ازم هم همینطور بوده ما به داستان حابیل و قابیل وقت نگاه میکنیم کنیم نخستین ظالم و در واقع امپریالیست یعنی قابیل که برادرش حابیل رو کشت ال تکنولوژیکی پیش از حابیل بود حابیل چوپان بود یکی دقان بود قرب نخستین تکنولوژی با شب در کشاب باردی با چماغ با یه چماغ چیز شده نخستین اصلاح بود نخستین تکنولوژی بود و واسطه اون برادرش رو و واسطه همون اصلا اون طب امپریلیستیش طب ازالمانش به فیل در اومد همون چماغ چیز که مثل اصلاحه بود احتمالاً بیلشم بود چه بسا ببینی پس این یک مسئله ایست اساسی نابر بهتر میتونیم بفنیم چرا سوسیالیزم علمی یا سوسیالیزم بستالا مارکسیستی هم تبدیل به یک سوسیال امپریالیست رو در شور و همون پوسته سوسیالیستیش رو نهایتا دارید و امپریالیستی خونخارتر از امریکا هم شد و دیدیم که در افغانستان در آخرین روزهاش چه جنایت هایی که خود امریکال یرمت تا این لحظه سوسیال که ماهو قدرت گذاشت و اگران لفظی بسیار زیبایی بود در این واقعیت بود چرا شد؟ برای این برای اینکه نگاه این سوسیالیزم یه نگاه کاملا امپریالیزمی بود به انسان و به معنای ادالت وقتی میگیم نگاه امپریولیستی بود این نگاه ای تکنولوژیکی بود فلسفه تاریخی و جامعه شناسی مارکس اقتصاد سیاسی مارکس تماماً فلسفی بر اساس اصحالت عبزار تولید و تکنولوژی مولد هست او در آغاز جوانی در کرد که تا چدی انسان با واسطه عبزار تولید و تکنولوژی تولید مسق از خود بگاه نمیشه منتها متاسفانه در آخر عمرش این اصل و فراموش کرد و چنین پنداش که اصلا با هم چنین باشه فقط اشکالی که در کاره اینه که باید این تکنولوژی و این ابزار تولید و, و این ابزار تولید عمومی بشه به نمه تقسیم بشه در دسته یه دهی نشه